دلم رمیده لولیوشیست، شورنگی، دروغ وعده و قطال وزع و رنگامیست فدای پیرهن چاک ماه رویان باد، هزار جامعه تقوی و خرقه پرهیست خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد که تازه خال تو خاکم شبد عبیرامیست فرشته عشق نداند که چیست ای ساغی بخواه جام و گلابی بخواه که آدم ریز پیاله بر کفنم بند تا سهرگه هشت به میز دل ببرم اول روز رستاخی فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولایتو امنیست هیچ دستاخی بیا که حاطف میخانه دوش با من گفت که در مقام رزا باش و از قضا مگورید میان عاشق و معشوب هیچ حایل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخید